صلوا على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما على ابراهيم وعلى اله ابراهيم حميد مجيد مسلمناي محترم موضوع امروزه ما في خدمه مهم و با از او و فکر کردن درباره باری از او برای هر مسلمان لازم است این درس ما شما درباره گناه شناسی است عزت حزیفه رضی الله تعالی عنه می فرماید که مردم از پیغمبر صلی الله علیه وسلم درباره نیکیها پرسان میکردن و ما عادت داشتم که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم درباره بدیها سوال میکردم و علتشان می فرماید خاطر ازی که وقت انسان بدیها را شناخت از بدیها خدا بقایه می کنه وهمي شيخ دواند متعالج جل اللجالوهو مسلمانار عمر میکنك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُوسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا كلمة اتَّقُوا ويا خود كلمة واقع یکی وقایتن مصدرش وقایه هست و وقایه خود نگاه کردن یا داشتن و از مبتلا شدن به یک مرس به یک میکروب به یک ویروس خود نگاه کردن ای را در حقیقت وقایه میگن کلمه وقایه برما و شما واضح است حتی در مرض های جسمی هم استعمال میشه که وقایه بهتر است نسبت به علاج و خدواند مطال جلجالهو برما میگه که قو انفوسکم و اهلیکم شما خدا وقایه بکنین و اعضای فامیلتانه که شما در مقابل از اونا مسئولیت دارین هم وقایه بکنین از چی وقایه بکنیم؟ از گناه ها پس وقتی که ما گناه را نشناسیم چطور میتونیم که از گناه خود را وقایه بکنیم کلمه گناه در قرآن عظیمشان به اصطلاحات مختلف آمده خود گناه به مانای خلاف و نافرمانی و دوری از طاعت و جرمی باشد وقتی به قرآن ازیم مشان رجوع کردیم کلمه گناه در قرآن ازیم مشان با به الفاظ مختلف ذکر شده یکی از این الفاظ ذنب است ذنب اصلا در زبان عربی به مانای دن و دن بالا استعمال شده بنا گناه به خاطر عزی به مانای دن بالا گفته شده که عاقبت و پیامد بسیار خطرناک دارد یعنی هر کسی که هر گناهی را مرتکب میشه در عقیب از گناه پیامدی بر از او ای گناه داره که زندگی از او هم در دنیا و هم در آخرت مورد سوال قرار میتن و آثار از او هم در دنیا برش پیدا میشه و هم در آخرت در دنیا از شخصیت عالی که خداوند متعال جل جلوه برش داده این شخصیت بزرگ عالی خود سقوط میکنه و در آخرت هم اگر خدای عزوجل و جل انسان رسوا بکنه که ما شما دعا میکنیم که پروردگار عالمیان از رسوایی روز قیامت ما و شما را نگاه کنه تا این که خدای ناخواسته در روز قیامت پیش ها انسان رسوا نشیم کلمه دیگه گناه در قرآن عظیم شان به معنای رجز آمدن رجز علما در لغت میگن که خود کلمه رجز به معنای لرزیدن و لرزاندن است و گناه روح و معنویت انسان بلرزه میاره شما ببینین در قصه یوسف علیه اسلام در قصه یوسف علیه سلام زلیخا که زن پادشاه مصر بود یک زن بود پرست بود این دو کار میکنه وقتی یوسف علیه السلام میبینه که جوان زیبا جوان قوی جوانی که تمامی صفات که او را یک زن به خود علاقمند مند میسازه تمامی صفات زیبایی در حضرت یوسف علیه السلام وجود داشت خاطر ازی که زلیخا با یوسف علیه السلام خواهشات نفسانی خدا براورده بسازه برای دو کار کرد گفتیم کار اولی چی بود که و غلقت الابواب دروازه ها را بسته کرد تا ای که کسی داخل قصر نشه و ما را نبینه غلقه در زبان عربی لامش وقتی که مضاف باشه یعنی بسیار دروازه ها را خوبصه ای که در اوی هیچ چیز نمانه یعنی بسیار محکم بسته کرد ای دروازه ها را یعنی خوبامد درست قل کرد و یوسف علیه السلام در داخل قصر به طرف زلیخان میبینه که چی کار میکنه ببینین اینجا میخوایم کلمه لرزیدن روح انسان با گناه وقت دروازه ها بسته شد و ای زن بود پرست در داخل قصر در امو جایی که میخواید که مرتکب جریمه و گناه شوه در امی اتاق یک بود داره که در دا کنج دیوال ماندگیست زلیخا میره یک چادر کلان یک قدیفه یا پتور پیدا میکنه و ایره میگیره در روی بط خود اوار میکنه حضرت یوسف علیه اسلام پرسان میکنه که چرا ریدی کارا کردی؟ میگه دروازه ها را بسته کردم تا که مخلوقات مره نبینه و در روی بوت خود ادسمال دسمال چون م خجالت میکشم که من گناه بکنم و این معبود م که من ای خدای خود فکر میکنم مرا ببینم در اینجاست که در تمام اعضای بدن حضرت یوسف علیه السلام یک لرزه وارد میشه چیغ میزنه و گریه میکنه و پروردکار خود این میگه که از برای خدا دو انصاره که تو از اون میترسیدی تو دم از اونا را گرفتی زمینه را برای کار بد خود آماده ساختی و ما دو انصار دیگه که دو چیز دیگه که ما باید از خجالت بکشم تو خرای خود بسته کهی در وزار را بسته کردی و سر معبود باطل خود هم قضیه فرانداختی. وقتیه داری که وقتی که روشا پات کردم یه مرا نمیبینه و دروازه رو بسته کردم. لکن من من چطور کنم که بی‌گناه مبتلا شوم؟ در حالی که اون مخلوقات که با ما هستن، کرامان کاتبین، ملائکه هایی که با ما هستن، روی از اون‌ها را که ما به هیچ چیز به دروازه دم از اونا را بسته کردن نمی‌تونم. و با خدایی که من ایمان دارم خدای عزوجل او خدای است که من به هیچ وسیله امان دیدن از نمیشم پس من چطور خجالت نکشم این جز میگه که ولا این لم افعل ما امره لیسجنا و من الصابرین اگر یوسف علیه السلام به چیزی که ما امر کرده بودم اطاعت نمی کرد برش دو جزا می دادم یک جزایش ای که دو جزای دنیایی که بسجن روان می شد یوس جنو وقتی که لام سر داخل شده ایره علماء میگن لام تعکید است یعنی حتما بدون شک که تو به زندان میری و نون توکید در آخرش است که نون توکید ثقیله میگن یعنی دو مرتبه فعل توکید شد به مانای ازی که اگر تو زنا نکنی حتما بدون شک بندی میشیم و لیکونم بعض میبینن و لایکون فی المضارعس لام لام توکید در اولش است و این تنوینی که در آخر است این به ایوازه اونمون نون توکید است هم توکید شده که لایکونم من و حتما تو در جمله کسانی میشی که در جامعه بسیار نام بدره کسب خواد کردی و بسیار به منزلت و به موقف زلت سر خود خواهی شد برای دو جذاب را دادم میشن ولی در مقابل وقتی که روح حضرت وجدان حضرت یوسف علیه سلام و از داخل حضرت یوسف علیه سلام اندازه ارتکاب گناه که خدای عز و جل او را میبینه و کرامن کاتبین او را مشاهده میکنن و در روز قیامت شاهد میباشن بالای اعمال ازی ای دیگه راه نداشت بجز ازی که بگویه چی بگویه قال رب بسجن و احب و مما ما یدعوننی قال گفت رب پروردکارا از سجن و احب و علیه زندان محبوبتر از بر من یعنی در مقابل امتیازی که برم از اولای که اگر من امراج زنا بکنم ما از زلت و خواری به رتبه و چوتی بلند میشم و به ایواز ازی که من زنا اگر بکنم آزاد می باشم و راحت زندگی می کنم برعکس از ازی یوسف علیه سلام گفت که نخیر رب سجن و احب و الی خدایا اونم خواری و بدبختی زندان برای ما بهتر تر است نسبت به ای که ما در روز قیامت ذلیل شوم؟ چرا کسی که منزلت دنیا را میخواید در, در مقابل نافرمانی خداوند در مقابل به خداوند در مقابل جرم کردن به خدای عزوجل اینجا خدای از و اگر امروز ما عزت دنیا را در مقابل معصیت خداوند بتلبیم این زلط خواری و بدبختی در قیامت نصیب ما میشه از اینجا یوسف علیه السلام گف رب بسجن و احب و الی معنی سیومی گناه که در قرآن از استعمال شده معصیت به مانای سرپیچی و خروج می باشد انسانی که گناه می کنه ای در حقیقت از حکم خدای عزوجل سرپیچی می کنه ایناله در یک روایت علما میگن لا تنظر الى مقدار المعصیتی ولكن انظر الى من عصیته انسان وقتی تو گناه میکنی، پشت از این نگرد که این گناه صغیره هست یا کبیره بلکه با ای بی, بی که ای گناهی را که تو انجام میتی به طرف اوزات ویبی که تو نافرمانی از او می کنی. وقتی که انسان می گناهی بکنه و بفاهمه که اینمی گناه من نافرمانی خدای عزوجل است ولو که گناهی بسیار خرد باشه مثل صحابه کرام اوناه میگفتند که در عصر ما وقتی که یک انسان گناه میکرد اگر این گناه به اندازه یک نوک سوزن می میبود اینمی گناه نوک سوزن به اندازه یک کو فکر میکردن چرا؟ چون می فامید که اینجا من نافرمانی ذات زلجلال کردیم. ببین شیطان یک حکم خدا را نپذیرفت مورد لعنت خداوند مطال جل جلاله قرار گرفت در حالی که خدا نگفته بود برش که به مسج دک چون شیطان میگفت که تو خدای خالق من هستی خلقتنی من نارن. یعنی به اعتراف میکرد که من مخلوق هستم و اعتراف میکرد که خداوند خالق ما هست ولی وقتی که نافرمانی خداوند کرد و این نافرمانیش به اساس تکبر بود بر لعنت خداوند بالای نازل شد اینال وقت ما یک انسان رو ببینیم که وقت نماز از نماز نمی سرزی ازی دو لعنت خداوند نازل میشم یکی لعنتی که ببینن شیطان گفت که سجده بر کی بکو بر آدم سجده احترام نه سجده عبادت و اینجا برای م... این ای انسان مسلمان میگه که تو میگی مسلمان هستم ایر خداوند امر میکنه که تو سجده عبادت و خود خدای عزوجل بر ما بگو انال انسان بی نماز وقتی که متوجه شو نمازی را که ترک میکنه انسان دو لعنت خدا را مستحق میشه لعنت مخالفت حکم خدا و لعنت تکبر به کردن به خدای عزوجل شیطان تکبر به سجده کردن به آدم کرد نه به خالق آدم و این انسان وقتی که نماز نمی خانه قصدن تکبر بالای ذات خدای عزا و می بر علاوه از این که حکم نمی پذیره معنای چارم گناه در قرآن شریف کلمه گناه و معنای اتم آمده الف فهمیم و اسم اسم به معنای سستی کندی و ماندن و محروم شدن است چرا انسان گناهکار با سستی و گناه انسان در طاعت خداوند سست می سازن. ایمان را ضعیف کنه و وقتی که ایمان ضعیف شد باس و اینها لکبیرت ایلا علی الخاشعین خداوند میگه که نماز بسیار بزرگ است ایلا علی الخاشعین مگر بالای کسانی که اونها خشوع دارند اینال اینمی سستی که نصیب انسان میشه ها قوت ایمان فرق میکنه از یک نفر ایمانش مثل ماشین بایسیکل است تا که لق تک نزنه حرکت نمیکنه 16 دفعه از شانش تکان بدهش تا که او بخیزه دور نماز بخونه ایمانش ضعیف است سست است ایمان بعضی کسا مثل ماشین موتور است کار خیره میکنه کنه خود با وصد دنگ dung براست مثل ماشین چالان است یم دنگ دنگ کرده ها برفوی پاک میکنه خود dung dung خودام میکنه میم خیر است ایمان تو مثل موتور سیکل فورس اینال این ماشین موتور سکل باز نمیتونه که موتر در حرکت بره وقتی که در موتر نسبش کنی استاد مانده پس ماشین که موتر حرکت میتن باید ماشین چی باشه؟ قویتر باشه اگر انسان میخواید که مثل موتر واره به طرف مسجد برن باید ایمانش قوی تر باشه این خاطر انسان مسلمان که ایمانش مثل ماشین موتر اما تو قوی هست و میتونه که یک موتر بسیار کلانه ها؟ بابره و حتی چند نفر دیگر هم ببینین انسان مسلمان که ایمان خدا هر کس میتونه که به مقیاس بکنه وقتی که خانید مسلمان آمد اگر ایمانت مرت سیکل وار رو بوددوندون کردی باز او میماننا خ از نفر میمان پای نفر میمان که شده و مترسکل سووار نمینشد گن بازتون میشیم میگومش شما هم ن این معام نمیرم ذیت اما که باز او ایمانش قوی تر است باز میگه بخی بردن ما شما پایین نفر میمان بریم بریم سی کنیم نماز خدا بخونیم تا که به باز میه نان تیار میشن رفتن به مسجد و عبادت کردن به قدرت و کمی و زیادت ایمان ضعیفی ایمان تعلق داره اما باز اونمون موتر اونمون اگر هر قوی باشه باز تیاره رو بالا کردن نمیتونه باز بخاطر ازی که انسان به آسمان ها پرواز بکنه باید انجن ایمانش مثل انجن تیاره باشه و کسی که ایمانش قوی هست ایمانش قوی هست باز او در احکام دین فقط وقتی که ما تو سوش میکنیم برق اینجا نیست برق در آثار برق که ما تو میبینیم اصلش در کجاست؟ اصلش در اونجا است بناه ان انسان مؤمن مجرد که سویچش کنی مستقیمن ذات خدای از زوجه را در مقابل خود احساس میکنه از این خاطر فرق است بین ایمان یا کسی که برش بگویی که یک کلکین مسجد خراب است و صیفش از پر پرست و بین او که خبرش رو بر ما دادن که بچه هاش برش پیسه رایی کرده بودن که ما در جان حج برو و مسجد خراب بود کس مردها کلگی بکاش شده بودن و یکی میگفت دسمال بگیرم که مردم پرده و دیگه میگفت من صحب چنده کنم طرف جیه به خودش سهل نمیکنه اگه نگی شون دیگه سهل میکنه که دیگه آبته ای گفت که چی پس گفت؟ گفتن مسجد خانه خدا ناتمام مانده پیسه نیست گفت من خانه خدا در اونجا برام و اینجا در پالی خانیم خانه خدا خراب باشد یعنی من میرم اونجا بیت الله شریف بیش خانه خدا که او الحمدلله بسیار لکس است و خانه خدا که در پالوی خانه ماست چی و ایران است گفت ما باید ای خانه سر ما حقش بیشتر است پس کل پیسی خدا داد برای چی؟ برای مسجد گفتن خانه خدا را جور میکنه. نفر دگی را برای ما قصه کردن در سرخ چار سیلو گفتن آمد دیدن که مسجد کارش نیمه مانده پیسه خود زیاد داده بود آمد که هیچ چیز پیشش نیستن و موترش از گفت چی پس؟ گفت که خانه خدا چرا کارش توقف داده ایم؟ گفت فعلا پیسه نیسته راست نفت موترفروشی و موتر خدا استاد کرد و برای اون موترفروش گفت که ارقدر که تو می و موترفروش که پیسیت موتر برش بیتی باز با قیمتی قیمت که باز پیشش بانی یک ماه دو ما باز با اون قیمت نمی حتما اطمان پیسیش کم می خیره گفت خیلیست ارقدر که می خیری آجل پی ما چطور دارم به طرف خدای عزواجل ببینم بی که خانه خدا نو تمام از و ما در موتر لکس میگردم یعنی بسیاری وقتا در خانه ما برقست در خانه خدا علکه نام نیست این ایمان چیز رو دارن؟ ای بر ایمان فرق میکنه. او نفر که در در در در چرا؟ چرا انسانی که مبتلا گناه هست تسلیم شیطان میشه و شیطان چی میکنه؟ ایفم انسان در کار دین سست میسازه یگه تا ایمانش کراچی وارستا که بزور تیلیش نکنی یک نفر کشش کنه و دو نفرم تیلش او باز حرکت میکنه بیانم امره داره بیان اول نمرگی داره بیا فلانی داره باس یه اما اگر دید که در اینی افتاده دیگر نمره نیست دوزی ای ایمان بردازه چی بارست؟ ای بردازه کراچی بارست یکی کشش میکنه دو نفر تیلش از این خاطر کوشش کنیم که هر روز تجدید ایمان بکنیم چه قسم میشه که ایمان قوی بسازیم؟ و ایم قوت ایمان مثل قوت جسم است قوت معنوی قوت معنویت مثل قوته مادیت وجود انسان است وقتی می خواهی که جسمت قوی شوه چی می کنیم از چیزایی که جسم ضعیف می سازه خودا وقایم می کنیم و چیزایی که جسم قوی می سازه از او استفاده میکنی پس به خاطر قوت معنویتت اول باید وقایه کنی پرهیز کنی از چیزایی که خداوند میگه ای اف مست تو را سست میسازن معنویتت زعیف میسازن تو را به عقب میرانن از این سستی ها از ای, ای بدی ها پرهیز بکن پس خدای از زوجال برای ما چی دادم؟ در نسخه قرآن پرهیز است و دوا بناهن از پرهیزهای قرآن که گناه است، از او پرهیز بکن و از دواهای قرآن که تو را به مقام محمود میرسانه از او استفاده بکن معنای دیگه, دیگه استعمال گناه در معنای به معناه سیعه به معنای قبیح و زشت است بناهن بنان گنا گنا جز قباحت و زشتی چیز دیگه ای نداره. انسان چیری انسانه. پیش خدای عزوجل و پیش مخلوقات خداوند بسیار قبیح و زشت معرفی می‌کنه. شخصیت انسان هم پیش مخلوقات خداوند و هم پیش خالق خدای عزوجل بسیار زشت جلوه میده. انسان از اون مقامی که مقام بزرگ انسانی است که خداوند متعال جل جلاله میگه که ولقد کرمنا بنی آدم ما بنی آدم کرامت دادیم و نفخت فیه روحی در اون روح مقدسی را دموندیم روحی ازت داد وظیفه ت ساختمان آناتومی وجودت آناتومی وجودت زیباتر است از همه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ساختمان ساختمان معنوی از همه بهترتر است روح تو با روح دیگر رو فرق میکنن و نفق تو فییم روح, روح تو را خداوند و خود نسبت داده داد تا که تو را عزت بده. مجد میگیم خانه خدا. وقتی که گفتیم خانه خدا این مکان عزت پیدا کرد وقتی گفتیم بیت الله عزت پیدا کرد وقتی شطور صالح علیه السلامه گفتیم ناقت الله عزت پیدا کرد وقتی که روح انسان گفتیم که این روح خداست یعنی روح خدا خداوند این رو یک متوجه که در عقیده خداوند به روح نسبت نمیشه چون روح مخلوق است. اما چرا روح خدا میگیم؟ خانه خدا میگیم؟ به خاطر که این مخلوقات وقتی که به طرف خداون اضافت کردی این اضافت تشریفی شریف میشه پس آناتومی وجودت لخت خلقنا الانسان فی احسن تقویم زیباتر از تمام مخلوقات در معنویتت نفخت و فیهم روحی در فیزیولوژی وجودت یعنی وظائف وجودت این جاعل فی الارد خلیفه تو سفیر و جانشین و خلیفه خداوند در روی زمین هستی پس گناه تو را از تمامی این منزلت ها پایین می سازن وقتی خداوند میگه که زینت مردا در ریش است کل کدن ریش انسان از اونمو زیبایی الهی دور می سازن وقتی که پیغم بسیده که د صال بسرکولین خس اگر روز نمیتونی نماز خفته رو خفتن سر کو کس نمبینیتم ثوابشو گرفتی ا ایناله تعمم دوکی میپوشت سیمای ملائکه کسی که لنگی و سر میکنه دهو چهره ملائکه هست از لنگیدار دشمنای اسلام زیاد میترسه از بعد به لنگی از زیاد تلاشی میکنه در جای بیری پلیس لنگیدار از زیاد تلاشی میکنه امریکا زود سر از اشتباه میکنه چروکی ده این سیمای ملائکه است و در وقتی که به سنت پیغمبر آراسته باشی از مسیرت شهرین دشمن خدا از تو میترسند یک موم که از پیشش دور باشی بندازی یک موم مسافت از پیشت میترسه اما اگر چهری چهری پیغمبری نبود باز در مسیر تا متر نام از پیشت نمیتسه یک هم که پیشش نزدیک باشی قرار پای خدا سر میز برات میمنه تو شیشی چاوی او پای خدا بر جای دیدم یک نفر الله اکبر از بالله کافر از که خدا به شخصیت ساخته بود کافر پای خدا سر میز بودی قرار شیشته بود برش چای پیش میگام خب گناه همچون به معنای جرم استعمال شده و جرم اصلا در عربی قطع کردن هم میگن میوچیدن جرم میگن کندن و قطع کردن انال چرا گناه را میگیم جرم؟ بخاطر که ایجا ارتباط انسان با خالقش روز روز قطع کرده میره او کسی که گناه را مرتکب میشه اگر یک هزار لین ارتباطی با خدا داشته باشیم با هر گناه یک لاین قطع میشه و روز روز که روز یک گناه و دو گناه و پنج گناه میکنیم از این خاطر متوجه باشیم پشت از این که این سغیر است یا کبیره لاین تا میکنه ارتباط با خدا قطع میکنه چرا؟ چون شیطان قیچی در دستش است تو اول لاینای خرد خردتا توسط گناه های سغیره قطع میکنه و انسانی که به سغاهر مبتلا شد شد شد شد شد شد, شد. بلاخره لاینای عمومیش که بلومی میشه شیطان سرش نوبتش میاد، و در قرص یک دفعه قطع میکنه اما وقتی که ای طرف هم دم شیطان لینها باشه و ای طرف و لا خطوات شیطان خدای عزوجل چی میگه نمیگه که گناه نکنین بلکه میگه مطابعت گام های شیطان نکنین چون شیطان اول برد بسیار فرشده که عوار میکنه قالین فرشدگی از خورترکیو شروع میکنه از گناه های خورد تا آهسته آهسته با گناه های خورد رابطه انسان قطع قطع قطع تا بلاخره بیخی رابطه شه. از خدای عزواجل قطع کنه شیطان نمیگه نماز نخوان، شیطان میگه تو بسیار شریف آدم هستی هیچ نماز نمیخانه تو این در مزجد میری نماز میخانی نرو در مزجد بخانده خانه آن تو بهترتر هستی وقتی که از جماعت خطای داد و کسی که نماز خفتن و, و صبحش در جماعت قضا میشه و قصدن نمیره به پیش خدای عزوجل در رست منافقین ثبت است ترک نماز و خوفتن و صبح جماعت خفتن و صبح الی الله علیه و سلام میگی به مسجد ای دو وقت سر منافقین امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسیار سخت تمام میشه از این خاطر کسی که اصرار میکنه در نرفتن نماز خوفتن و صبح در جماعت بدون شک در لست منافقین نامش ثبت است بین از این لست بکشیم کسانه که خدای اینا تا به حال در اشتباه مواجه هستند. گناه به معنای فسق هم آمدن فسق عرب ها میگن که خارج شدن خسته خرما یا هسته خرما از پوست است بنا گناه انسان اون موقت لچ میکنه مثل که شیطان سعی و تلاش میکند تا که انسان از لباسش دور بکنه دشمنهای اسلام چی میگن؟ میگه او وقت ما میتانیم که حکومت کافری در کشورهای اسلامی مستحکم بسازیم که جوان بیحیا شود لباس خدا بکشن با یک نیکر خیزک بزنه. یخن خدا و قولای خدا خودش و از خانم خدا و از خواهر خدا لچ بکنن و هیچ نشرمن و شیطان وقتی که حضرت آدم و بیبی بی حوارن لغزانت اولین کاری که کرد لباسشانه از تنشان دور سخت پس گناه لباس لبوس الفطوکیو ساترو حیا را از بدن انسان دور میکنه و خلاصه ماجعه الانبیا خلاصه چیزی که پیغمبرا آوردن اون او چی بود ایذا لم تستحی فس ما شئت خلیفه تمام خلاصه تمام سخنهای پیغمبرا بود که وقتی که نشر میدی هر چیزی که دل واسه انسان که گناه میکنه ببین اذا لم تستحی فس نعماشیت وقتی که حیا داشتی هر چیزی که دلت است بکن وقتی که میخوایی خفتنکی گناه بکنی و اونجا یک تفلک پنی ساله باشده و اتاق و تفلک چی میکنی؟ دست شگرفتا میگید تو برو برو برو در اتاق دیگه برو دروازه سرت قایم میکنی از طفل پنی ساله شرمی، و دم قابلش گناه میکنی اینالی انسانی که از طفل پنج سال همی اگر ای از خدای عزواجل بشرمه از ملایکه های کرامن کاتبین که 24 زد هستن از این پس بس این گناه نمی کنه. اذا لم تستحی وقتی که از خدا نشرمیدی از ملایکه های خدا نشرمیدی از مسلمان ها نشرمیدی فسن اما هر چیزی که خواستی بکن فساد هم گناه به معنای فساد هم استعمال شدن و فساد به معنای خرابی و ضد اصلاح غذای فاسد غذایی که قابل خوردن نیست بنااند گناه انسان فاسد میسازند وقتی که انسان فاسد شد در جنت کس میره در یخچال غذایی که بوی بته و گنده باشه اون میگیریم میمانت گناه پا غذای پاک بویناک گوشت بوی زده را که برش پیش بانی که بوی کرد نگه با من هم میخورم پس انسا... گناه انسان بویناک میزازه انسان چی میزازه؟ گنده میزازه از این خاطر انسان فاسد میزازه در شخصیتش در حیثیتش در روابط اجتماعیش از این خاطر گناه به معنای فجور گناه به معنای فجور هم استعمال شدن که وقت میعنیم که فجور و فجور در زبان عربی به معنای شق کردن و پاره کردن است بنا شیطان وقتی که انسان مبتلا به یک گناه میکنه چی میکنه را را برای خود یک عضو بدن ترا دو شخ میکنه مثل چی هست؟ شیطان بگن مثل او وارس وقتی که دند او جور کنی دم او بند کنی او سراخه که خرد پیدا میکنه خالیگاه پیدا میکنه وقتی یک خالیگاه که خالیگاه خرد درک دند پیدا کرد از امو بر خود راجور جور میکنه میکنه میکنه بلاخره کلان کلان کلان کلان ساخت و گناه شیطان توسط گناه شقی در وجود انسان پیدا میکنه. و وقتی که در وجود انسان جای پیدا کرد اونجا در دا داخل وجود انسان شیطان هر کار را که خواسته باشه در وجود انسان او را انجام می ش... معنای دیگه گناه که در قرآن استیمال شده منکر است منکر به معنای انکار ناشنایی است خاطر چی؟ خاطر ازی که مثلا یک چیز را که تو نمیشناسی فطرت سالم انسانی فطرت سالم ایمانی با گناه در تزاد است آشناس، و شیطان میخوای که توسط گناه انسان را به بدی ها آشنا بسازه و از نیکی ها او را دور بسازه بناهن گناه ها را منکرات میگن و وقت کسی به منکرات مبتلا شد با از پذیرش هدایات دور میشه بعد خود خدا از راهنگ دور میسازم همین قسم گناه به معنای فاحشه این نهو کان فاحشتن وساعت فاحشه به معنای فحش به معنای زشت تجاوز و بخل است بنا ان انسان گناهکار زشت است و تجاوز کرده با حدود خداوند متعال و بخیلی کرده در تطبیق حکم خدای عز وجل گناه همی قسم به معنای خبس خبز مرداری و عدم پاکی و بر ضد طیب استعمال میشه بناهن با گناه انسان طیب و پاک خداون انسان پاک خلق کرده به خوب و مبتلا میشه گناه به معنای شر نیست در قرآن استعمال شده که شر به معنای زشتی و منفور ساختن و منفور شدن و بد شدن به نزد مردم است که بزید خیر استعمال بشه بناهن انسانی که گناه میکنه خود در مقابل دیگران منفور و زلیل قرار میتن و گناه به معنای لمم نیست. استعمال شده که لمم در زبان عربی به معنای نزدیک شدن به گناه است. بناهن گناه, سغ... گناه های صغیره در قرآن به معنای لمم هم گفتن الذین يجتنبونه کبائر الاسم والفواحش الا اللمم بناهن گناه های صغیره انسان نزدیک میسازه به گناه های کبیره و در قرآن میگه نمیگه که زنا نکنین میگه لا تقرب الزنا یعنی وسائل خرد و کوچک گناه های صغیری که تو به زنا نزدیک میسازه از او اجتناب کو به او خود نزدیک نشی یعنی زن نامحرم بس نامحرم بدون ضرورت قصه نکو زیاد مذاق نکو استاد نشو خلوت نکو در فیلم که زن نامحرم است به طرف از فلم زیاد نبی چرا که دیدن زیاد فلم ترا با سغیره و سغیره تو ترا با کبیره و زنا همی و ویزر هم استعمال شده که وزر به معنای سنگینی و حمل است بنامه کسی که در اینجا گناه را بار از او در روز آخرت بسیار سقیل و گرنگ است وزنش در اونجا زیادتر است دیگرها اگر انسان پیاده را ببینید وقتی که یک انسان در آن میره در راه حرکت میکنن و هیچ بار ندارن در سر کوه هم به بسیار سادگی در حرکت میکنن اما انسانی که در روز قیامت و در پولیسرات بورجی بسیره و چل سیره گره در پشتش است یک نفر مثلا بورجی چور در سیره در پشتش است آیا راه رفته میتونه در بلندی مثل کسی که ذست خالی در حرکت است. انال انسانی که گناه میکنه بورجی چون سری گناه را در روز قیامت حمل میکنن. و همچنان گناه به معنای هنس ام استعمال شده که هنس به معنای میلان اجتناب و دوری کردن است که باقی مانده درس گناه را در اصطلاح و اقسامش در درس های بعدی خدمت تقدیم خواهد کردیم. سبحان ربک غیب الاحزه و یسفون و سلامٌ علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. پروردگار توفیق نصیب که تا ما از گناه خود را نگاه بکنیم خدایا در دل ما خوف و ترس از گناه را زیاد کن پروردگار با محبت خود سنگینی گناه را بر ما آسان بساز تا که بتانیم از این گناه ها خدا نگاه بکنیم و اجتماع بکنیم پروردگاران خسین روز انتقال از دنیا را و خسین روز ملاقات خود بهترین روزهای زندگی ما به و آخرین کلمه را که از زبان ما خارج می لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه